من میرحسین حسین موسوی به صحنه آمدم چون روانده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود را نگران کننده یافتم آمدم تا کرامت انسانها را پاس بدارم آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم آمدم تا از حق ملت برای اطلاع از امور کشور دفاع کنم آمدم تا وسیله باشم برای بازگرداندن اقتدار، عزت و هویت ایرانی. آمدم تا با تنش روابط بهتری میان کشورمان ایران و جهان برقرار کنم. آمدم تا همراهی باشم برای رفتن به سوی ایرانی مستقل، آزاد، آباد پیشرفته و سربلند. آمدم تا به صورت سریح و روشن از تولید ملی پشتیبانی کنم. آمدم تا اشتغال را دغدغه هر روزه دولت قرار دهم آمدم تا حامی مستضعفان باشم آنانی که فشار تورم قامتشان را خم کرده و سیاست نادرست اقتصادی عزتشان را نشان رفته است آمدم تا با تشکیل دولتی فرهنگی مدافع فرهنگی غیر دولتی و غیر دستوری باشم امیدوارم نتیجه فعالیتهای آتی که به مدد همه شایستگان کشور از زنان و مردان و از تمامی گرایش ها اقشار، اقوام و مذاهب و ادیان حاصل خواهد شد پاسخی مناسب به اعتماد کسانی باشد که این جانب را در خور حمایت یافتند اطمینان دارم که ملت شریف ایران هوشمندانه تحولات کشور را دنبال می و با شرکت مسئولانه در انتخاباتی که آینده این سرزمین را رقم خواهد زد به وظیفه انسانی، ملی و دینی خود عمل خواهند کرد